هر لحظه ای که خدا و رسول شما را خاندن برای جهاد حرکت کن این دو گوین کن هر لحظه ای کشما را خاندن اکس آل خمائیمان آؤا آؤ رد یا جواب بهدید خدا و رسول اداداؤا آکوم هر لحظهک و خاندان، را خاندن هر لحظهک یا خدا و رسول شما را برای جهاد خاندن جواب بگیم شما را خاندنل ما یوهی بران چیز ہے کہ زندگی میدهد و جهاد ہے وہ جهاد زندگی میدهد و مولوی صاحب زندگی عزت را میدهد و زندگی جعب را میدهد قانون غانون هر ہے فَارْ لَحَسَئِ اللَّمَا يُحِيكُمْ شُمارا خاندن جهاد جواب دید دی. قُبِ دانی دگر از جواب شانا خالی کردید شاید مردود بارگاہ بشوید بدانید یقیناً که اللہ تعالی حائل بین مرد و دلش اللہ تعالی نگاه می کند که این انسان چطوره در آن انابت هست و اجابت یا نا و یقیناً بدانید که شما به طرف خدا حشر کرده می شوید حشر بترسید است اون فتنه هایی اگر شما جواب نمی کنید کفار غلبه می کند وقت کفار غلبه کردن نیه کفار شما را دابون می کند نه ایستی برای شما میماند نه نا برای نیه که شما ایستی میماند نه برای شما خدا دشمن را بسلط لکنه استسلط دشمن هیچ چیزی برای انسان بگونه وقت تکون فتنه تا بترسید از نتیجه بد نعفرمانی بترسید از اون بلاهی که اون بلاه نمیرسد تناب ظالمین شما خاصتا اگر دشمن مسلط شد دشمن همه را از تیغ می بر هیچ کسی رحم نمی کند پس امروز همه هم را بشید در برابر دشمن بزنگید و یقینم کنید که الله شدید و لعقاب است اگر شما اغفر نشینی کردید از جار شدید و لعقاب شما را از آ...